داستان دختر دانای دهقان یکی داشت یکی نداشت در زمانهای قدیم دهقان فقیری بود که یه دختر داشت اونها تو خونه کوچک و محقر زندگی میکردند یه روز دختر به پدرش گفت پدرجون چطوری که ما از شاه مملکت بخوایم یه تکه زمینی به ما بده تا در اون؟ زراعت کنیم. پدر این فکر رو قبول کرد و روز بعد به دربار رفت و درخواست خودش رو به عز پادشاه رسوند. پادشاه که دلش به حال دهقان سوخته بود، تکه زمینی به او داد. روزی دهقان و دخترش مشغول شخم زدن زمین بودند که یه هاون طلایی پیدا کردند. دهقان گفت: این هاون رو باید به دربار ببرم و تحویل شاه بدم. اما دختر گفت پدرجان، اگه هاون رو برای شاه ببری حتما میپرسه پس کول دستش اون وقت برات دردسر میشه. دهقان حرف دخترشو گوش نکرد و هاون رو برداشت و پیشه پادشاه برد. پادشاه تا چشمش افتاد بههاوم پرسید پس کو دستهش دهقان گفت قربام دستش رو پیدا نکردم پادشاه باور نکرد و دستور داد اونو زندانی کنم دهقان وقتی به زندان افتاد روز و شب ناله میکرد و میگفت ای کاش به حرف دخترم گوش میکردم و این بلا سرم نمیومد نگهبان ها که این حرفها رو میشنیدند خبر پیش پادشاه بردند و پادشاه گفت: اونو پیش من بیارید تا ببینم منظورش از این حرفها چیه؟ وقتی دقیقان رو نزد پادشاه آوردند او حرفهای دخترش رو برای پادشاه بازگو کرد. پادشاه گفت: عجب دختر دانا باهوشی و دستور داد؟ که دهقان رو آزاد کنند و دخترش رو پیش او بیارن وقتی دختر رو نزد پادشاه آوردند او معمایی برای دختر طرح کرد و گفت اگه جواب این معما رو پیدا کنی با تو ازدواج میکنم معما از این قرار بود این که که پیش من میایی، نه لباس بپوش و نه نپوش نه سواره بیا نه پیاده، دختر به خونه برگشت و یه تور ماهیگیری بزرگ تهیه کرد و سپس بدون لباس خود رو در اون پیچید و بعد از پدرش خواست تا تور رو به دوم آلاغ ببند و به دین ترتیب اولاق اونو کشون کشون تا دربار برد. پادشاه وقتی دید که دختر دهقان معما رو حل کرد به قول خودش وفا کرد و با او عروسی کرد. چند سالی گذشت تا اینکه یه روز شاه با مالازمانش برای هواخوری بیرون رفته بود که دید دو نحبر دهگان به جون هم افتادند و دارن کتک کاری می شاه دستور داد اون دو نفر رو از هم جدا کنند و پیش او بیارند. وقتی اونها در برابر شاه حاضر شدند شاه دلیل دعوای اونها رو پرسید. داستان از این قرار بود که یکی از دهگانه ها دو گابه نداشت و دیگری دو اسب که یکی از آنها کره بود. اونها حیوانات خودشون رو به بازار برده بودن تا بفروشن. صاحب گابه ها می گفت اون منتظر مشتری بوده که یه دفعه کره اسب بلند شد و اومد نشست میون گاوهای های او ادعا می کرد حالا که کره با پای خودش اومده و بیونه گاب های من پس مال منه. صاحب اصفا هم که این ادعا رو قبول نداشت شروع کرده بود به دعوا و نهایتا کار به زد و خرد کشیده شد. پادشاه وقتی علت دعوا رو فهمید حق را به صاحب گاب داد و دستور داد کره اسب را به او بدن. صاحب که از این داوری ناعادلانه به خشم اومده بود روز بعد شکایت پیش ملکه برد. ملکه دلش به حال مرد بینوا سوخت و تدویری برای او اندیشید منتها از او قول گرفت که پیش کسی نامی ازش نبره دهقان قول داد. ملکه گفت فردا یه تور ماهیگیری بردار و در مسیر عبور شاه قرار بگیر و وقتی او نزدیک شد ظاهرا شروع کن به ماهیگیری توی خشکی. سپس به او گفت که اگه مورد بازخواست شاه قرار گرفت چی بگه؟ صاحب روز بعد در مسیر عبور پادشاه قرار گرفت و وانمود کرد که مشغول ماهیگیریه. پادشاه وقتی این منظره رو دید به خشم اومد و دستور داد مرد را به حضورش بیارند. وقتی مرد در برابر شاه حاضر شد، شاه اونا مورد بازخواست قرار داد و در مورد کارش توضیح خواست. صاحب اسفرو گفت: قربان من که کاری نکردم. مگه ماهیگیری در این کشور قدقنه؟ پادشاه فریاد زد. ماهیگیری تو خشکی؟ صاحب اسب با آرامش پاسخ داد. چرا که نه؟ در کشوری که گاو نر کره اسب به دنیا میاره توی خشکی هم میشه ماهیگیری کرد. پادشاه گفت این حرف حرف حسابیه اما حرف دهن تو نیست. دوگو ببینم این حرف رو کی یادت داده؟ صاحب اصبا گفت کسی یادم نداده؟ پادشا گفت حالا معلوم میشه و دستور داد اونو تحت شکنجه قرار بدهند تا سر حرف بیاد صاحب اسبا هم که شکنجه رو تاب نیاورد ملک رو لودار پادشاه وقتی فهمید کار کار ملک است، به شدت خشمگین شد و ملکه رو فرا خوند و گفت ای زن خائن ای زن مکار. حالا کارت به جایی رسیده که با رعیت دست یکی می کنی و علیه من نقش میکشی تا دستور ندادم به دارت بکشن فوری جا رو پلاست جمع کن و از اینجا برو. ملکه گریه کنان گفت آخه من که جایی رو ندارم اهلا حضرت. ای خاین ای دختر گدا گورتو گم کن به خانه ویرانه پدرت برو ملکه که میدید اوضا بد جوری قمر در اقربه گفت امر امر همایونی است میرم اما اجازه بدید این شب آخری شام را در حضور عالی جناب صرف کنم پادشاه که دلش هنوز ملکه رو دوست داشت و هوش و ذکاوت او رو ستایش میکرد با این درخواست موافقت کرد ملکه فاصله پیش آشپز رفت و به او دستور داد که در غذای شاه داروی خواب‌آور بریزه موقع صرف شام ملکه به پادشاه گفت الا حضرت از حضورتون یه درخواست دیگه هم دارم خاهش میکنم اجازه بدید موقعی رفتن اونچه رو که در این قصر برایم فوقالعاده عزیزه با خودم ببرم پادشاه با این درخواست هم موافقت کرد پادشاه هنوز شامش رو تموم نکرده بود که در خوابی عمیق فرو رفت ملکه فوری اونو در ملحفهای پیچید و به کمک خدمتکار به کالسکه منتقلش کرد سپس خودشم سوار کالسکه شد و به خونه پدرش رفت. اونجا پادشاه رو توی رخت خواب گذاشت. پادشاه یه شبانه روز خوابید و وقتی چشماش رو باز کرد خودشو در جای غریبه دید. او خدمتکارها رو صدا زد اما خبری از اونها نبود. به جاش ملکه بر بالین او حاضر شد و گفت از همایونی اجازه خواسته بودم که عزیزترین چیزی رو که در قصر داشتم با خودم به خونه پدرم بیارم. چه عزیزی بالاتر از گوهر وجود همایونی. قلب پادشاه از شنیدن این حرفها ها به رحم اومد و همسرش رو بخشید. روز بعد پادشاه و ملکه به قصر بازگشتند و سالیان سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me slash m-e-h r-a-n d o نشانی وبلاگ ما